داستان‌های افسانه‌ای صوتی به مدیریت آقای محمد جواد بوستانی خانش توسط بنفشه این داستان بهترین داماد یکی بود یکی نبود روزی روزگاری نزدیک رودخانه سارایو یک عابد فقیر با همسرش زندگی میکرد اونا توی یک کلبه کوچیکی ساکن بودن و لباسای کهنه میپوشیدن و چیزایی که مردم دهکده بهشون صدقه میدادند می از طرفی بچه هم نداشتند و همسر آبد خیلی دوست داشت که بچه رو به فرزند خوندگی قبول کنه به همین خاطر مرد آبد به در خونه های, های مجاور می‌رفت و می که اگه کسی حاضره بهش بچه بده بپذیره اما هیچ کس حاضر نبود به چون این مرد و زن فقیری بچه بده درست بود که اونا بسیار فقیر بودند. اما آبد فقیر دارای قدرت ماورا و طبیعی ای بود روزی اونا جلوی کلبه خودشون نشسته بودن ناگهان موشی از منقار کلاغی که بالای سرشون پرواز میکرد به زمین افتاد همسر آبد موشو برداشت و ازش پرستاری کرد و اونو به شوهرش داد و گفت حالا که ما فرزندی نداریم، چرا تو از قدرتت استفاده نمی کنی و این موشو به یه بچه تبدیل نمی کنی؟ مرد آبد خندید و گفت من هر کاری که باعث خوشحالی و رضایت تو بشه انجام میدم بعد زیر لب دعایی خوند و از آب مقدس چند قطره ای روی موش پاشید و در همون لحظه موش به یه دختر بسیار زیبایی تبدیل شد همسر آبد که از خوشحالی سر از پانه میشناخت شروع به تربیت دختر کرد او رو نوازش میکرد از بهترین غذاهایی که میتونستن به دست بیارن بهش میداد میخورد با مهربونی اسم دخترشون موشی گذاشتن و ازش مراقبت میکردند مدتی گذشت دختر زیبا بزرگ و بزرگتر شد در این بین آب دو همسرش سعی کردند تا دختر همیشه شاد و خوشحال باشه و از تربیت و تحصیلات بسیار خوبی برخوردار بشه دختر علومی مثل ادبیات، ریاضیات و رقص آواز رو به خوبی آموخت. وقتی به سن ازدواج رسید، عابد تصمیم گرفت همسر مناسبی براش پیدا کنه. همسرش بهش گفت: تو خیلی قدرتمندی که تونستی موش کوچیکی رو به یه دختر زیبا تبدیل کنی. حالا باید از قدرتت استفاده کنی و بهترین داماد رو برای دخترمون پیدا کنی. آبت جواب داد: حتماً. حتی اگه از خورشیدم بخوام با دخترم ازدواج کنه این کارو میکنه همسرش با خوشحالی پرسید واقعا یعنی تو این همه قدرت داری خب در این صورت من خیلی دوست دارم که خورشید داماد من باشه حالا نشون بده چیزی که گفتی میتونه واقعا اتفاق بیفته آبد با لبخند جواب داد بسیار خوب بعد چشماش رو بست و از خورشید درخواست کرد که با دخترش ازدواج کنه. خورشید پاسخ داد: من هیچ مخالفتی ندارم که دختر شما همسر من بشه. اما آیا شما مطمئنید که دخترتون منو دوست داره؟ آبد دخترش رو صدا زد تا باهاش مشورت کنه. دختر گفت: پدرجان جان، همسری که شما برام انتخاب کردین خیلی خوبه. اما من کسی رو میخوام که از او بزرگتر و قویتر باشه. آبد که فکر نمیکرد کسی قویتر و بهتر از خورشید پیدا بشه، غمگین شد و به فکر فرو رفت. در همین موقع خورشید گفت، فکر میکنم ابر بزرگتر و قویتر از منه چون خیلی وقتها موفق میشه جلوی تابیدن منو بگیره و طوری پنهونم کنه که دیگه مردم منو نبینن. خورشید با گفتن این جملات اونجا رو ترک کرد و خیلی زود عبری جلوی کلبه عابد رو گرفت. این بار به جای اینکه مرد از عبر بپرسه که آیا حاضره با دخترش ازدواج کنه؟ از موشی سوال کرد که آیا حاضر عبر رو به عنوان همسر به پذیره؟ موشی لحظه ای به عبر نگاه کرد و گفت پدرجان این داماد خوبه اما کمی تاریک رو گرفته است. آیا دیگه کسی بهتر و قوی تر از اون سراغ نداری؟ آبد حیران شد و با تعجب به ابر نگاه کرد. ابر جواب داد باد قوی تر و بهتر از منه چون بیشتر وقتا منو از یه گوشه آسمون به گوشه دیگه هل میده. ابر رفت. لحظه بعد باد پیدا شد. موشی بهش نگاه کرد و گفت پدر جون. این مرد جوان به نظر میرسه خیلی دمدمی مزاج باشه. آیا کس دیگه ای بهتر از او و قوی تر از او نیست؟ آبد داشت با نگرانی به اطراف نگاه میکرد که باد گفت نگران نباش. کوه مطمئنن از من قوی تر و بهتره. چون میتونه جلوی منو بگیره و من نمیتونم هرگز مزاحم آرامشش بشم. فکر میکنم دختر شما وقتی کوه رو ببینه راضی بشه. به محض رفتن باد کوه ظاهر شد موشی لحظه‌ای به کوه نگاه کرد و گفت پدرجان این شخصی که شما برام در نظر گرفتین به نظر باهوش میرسه اما آیا فرد دیگه ای بهتر و قدرتمندتر از این نیست کوه فاصله جواب داد البته که وجود داره درباره موش چی میگی او از منم قوی تره چون تمام تنم رو سوراخ سوراخ کرده و میتونه همسر مناسبی برای دختر بلند همتی مثل دختر شما باشه و بلافاصله بعد از ناپدید شدن کوه سر و کله موش پیدا شد به محض اینکه موشی چشمش به موش افتاد با خوشحالی گفت آه پدر عزیزم این همون کسیه که من میخوام چرا با بودن چنین دامادی که بزرگترین و بهترین و قویترینه سراغ ابر و باد و خورشید و کوه رفتید پدرجان لطفاً قول بدین که بدون هیچ تأخیری مراسم ازدواج منو با این جوون که از همه بهتره آماده کنید. موشی با موش ازدواج کرد و منزل پدرخونده خودش رو ترک کرد تا توی خونه ی همسر خودش زندگی کنه. همسر مرد آبد آهی کشید و با لحنی بهت زده گفت جای تأصفه من دلم میخواست او بهترین شوهر رو داشته باشه. اما اون فقط یه موش رو انتخاب کرد امیدوارم از شنیدن این داستان لذت برده باشید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 نشانی وبلاگ ما M -e